به نام خدا با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز داستان درخت سهرامیز بی نتیجه بودن بدجنسی و جنایت و نیز به مقصود رسیدن در اثر تلاش و پوشکار از های این افسانه است افسانه درخت سهرامیز از افسانه جن و پری است و در طبقه بندی جهانی قصه ها در این ردیف قرار می گیرد. مضمون و در اون مایه این افسانه پایداری، چاره اندیشی در سختی ها و پیدا کردن راه چارهای برای نجات خیش است. جادوگر ضد قهرمان و کبوترها به عنوان کمک قهرمان آمده اند. شما رو به شنیدن اون دعوت می کنم. یکی بود و یکی نبود. سالها پیش یه روز شاهزاده دلیری با اده ای از دوستاش به شکار رفت و در دنبال آهویی وارد یک جنگل شد. مدتی تو اون جنگل صبر کرد تا بلکه دوستاش بهش برسن اما اونها راه و گوم کرده بودن و از سمت دیگه ای رفته بودن. ناگهان صدای قررش ترساوری سکوت جنگل و هم شکست، و شاهزاده متوجه شد که گرگ خاکستری بزرگی پشت سرش ایستاده اسب شاهزاده از دیدن گرگ بسیار ترسید و سعی کرد که انان و افسار خودش رو از دست شاهزاده رها کنه و پا به فرار بذاره اما شاهزاده انان اسب رو محکم تو دستش نگه داشته بود و با شلاقی که در دست داشت گرگ رو از کنار اسب دور میکرد. هنوز چند شلاقی به گرگ نزده بود که ناگهان کسی از دور فریاد زد، چطور جرأت داری حیوانای اهلی منو بزنی؟ شاهزاده نگاهی به پشت سرش انداخت. کمی دورتر یه جادوگر پیر توی جاده ایستاده بود و گرگ در حالی که دندانهای های زرد رنگشانشون میداد؟ به طرفش میدوید شاهزاده همین که جادوگر و دید گفت واقعا که اسم این گرگ و با طیوون اهلی گذاشت زود اونو از اینجا دور کن وگرنه با این شلاق اونو خواهم کشت جادوگر جواب داد، اگه جرت داری این کارو بکن وقتی که شاهزاده سر اسبش و به طرف شهر روانه شد جادوگر فریاد زد تو برای کار امروزت متأسف خواهی شد. وقتی که شاهزاده از جنگل خارج شد، دوستاش به اندازهای دور شده بودند که دیگه اثری از اونها پیدا نمی شد. شاهزاده به تصور اینکه اگه راه رو میونبر بره زودتر به اونها میرسه، از جاده دیگری جنگل و دور زد و به سرعت مثل باد به طرف مقصد نامعلومی روانه شد. در این مدت تشنگی شدیدی بهش دست داد. اتفاقا زن دهاتی پیری کنار جاده ایستاده بود. شاهزاده ازش پرسید که کجا میتونه آب پیدا کنه. این زن دهاتی همون جادوگر بود که خودش رو به این شکل درآورده بود جادوگر که شاهزاده رو در چنگ خودش سخت گرفتار دید خوشحال شد و بهش گفت که در قلب جنگل چشمه بزرگی وجود داره که آب اون از شراب هم گواراتره شاهزاده که نمیخواست وقتش رو تلف کرده باشه ازش خواهش کرد که این چشمه رو بهش نشون بده اما شاهزاده نمیدونست که این جادوگر اونو به جنگل میبره تا از آب جادو شده بهش بخورونه. وقتی که به چشمه رسیدن، شاهزاده از اسب پایین اومد و مشتی از آب صاف و زلال چشمه پر کرد و نوشید. بعد از اون که تشنگیش فرونشست، بلند شد تا دهنه اسبشو بگیره اما هنوز دست جلو نبرده بود که احساس کرد سرش گیج میره. دستاش کم کم دراز شد و به شکل شاخه درخت در اومد و پاهاش به زمین فرو رفت و در خاک ریشه دوند و خلاصه در عرض چند لحظه شاهزاده مبدل به یک درخت نارون شد. دوستش بعد از جستجوی زیاد از یافتنش ناامید شدند و وقتی قیبت اون طول کشید شاهزاده دیگه ای رو به جای اون فرمانروای کشورشون کردند. با اون که درخت نارون یعنی همین شاهزاده همیشه تلاش می کرد که بدبختی و بیچارگی خودشو برای رهگذر و شرح بده ولی اونها چیزی از صدای نامفهوم اون سردر نمی آوردن. هیزم شکنای جنگل وقتی که برای بریدن درخت خشک شده به جنگل می درخت نارون فریاد میزد: من یه شاهزاده هستم من یه شاهزاده هستم اما هیزم شکنها صدایی به جز زوزه باد نمی شنیدن زمستون سرد و کشنده نارون و بسیار ناراحت میکرد. وقتی فصل زیبای بهار فرا رسید و پرنده های نقم سرام به جنگل برمیگشتند نارون زندگی جدیدی رو در خودش احساس می کرد. در سال اول یه جفت کبوتر جنگلی در بالای شاخه های نارون ناروند لونه کردن. شاهزاده از اومدن اونها خیلی خوشحال شد چون زبون اونها رو خوب میفهمید شب نیمه تابستون کبوترا بهش گفتن امشب پادشاه درختها به جنگل میاد. این سر و صدا یک نواخت و در جنگل نمیشنوی؟ این سر و صدا از درخت‌هایی که خودشونو آماده پذیرایی از پادشاه میکنن. اونا برگ های خشکی شده خودشونو به زمین میریزن و شاخه رو تکون میدن شاهزاده گفت: پادشاه درختها به چه شکلیه کبوترها جواب دادن اون موجودی بلند قد و تیره رنگ و قوی کله که در بالای یکی از کاجهای جنگل شمال زندگی میکنه هر سال در شب نیمه تابستون دور جهان میگرده تا ببینه آیا درختها در وضع خوبی به سر میبرند یا نه شاهزاده پرسید فکر میکنید اون بتونه به من کمک کنه؟ کبوتر رو جواب دادن از خودش بپرس غروب شب نیمه تابستون به پایان رسید و تیرگی شب سراسر جهان رو در خودش فرو برد نیمه های شب با اون که باد میوزید درختان برگهاشونو تکون میدادن و موسیقی دلنشینی رو به وجود میاد در همون لحظه پادشاه درختها وارد جنگل شد همونطور که پرنده ها تعریف کرده بودن اون یک موجود بلند قد تیر رنگ بود پادشاه درختها با صدایی شیرین و لذت بخش پرسید ملت من حال شما خوبه تقریبا همه درختها جواب دادند: بله قربان اما دو سه درخت شکایت کردند که شاخه هاشون میافته و حتی یک درخت کوتاه هم گفت که همسایش نمیذاره نور و آفتاب بهش برسه. شاه پس از رسیدگی به شکایات درختها با اونها خداحافظی کرد و در صدد بود که از جنگل بیرون بره که شاهزاده جادو شده فریاد زد ای پاد شاه درختها! لحظه بیستید با اون که من از ملت شما نیستم به شکایتم گوش بدید من یه شاهزاده هستم که یه جادوگر بدجنس منو تبدیل به درخت کرده میتونید به من کمک کنید؟ پادشاه جواب داد افسوس ای دوست عزیز که من نمیتونم به تو کمک کنم ولی ناامید نباش من در گردش به دور جهان حتما یه نفر رو پیدا میکنم که بتونه به تو کمک کنه سال دیگه همین موقع منتظر من باش پس درخت نارون شاخهاشو تکون داد و پادشاه هم از جنگل خارج شد بار دیگه زمستون سرد و تاریک و خاموش فرارسی. وقتی که بهار برگشت دوشیزه زیبایی با هیزم شکنها به جنگل اومده بود. شبها در زیر سایه درخت نارون میخوابید. پدر این دوشیزه تاجر ثروتمندی بود که سالها قبل ورشکست شده بود و در اثر غم و اندوخ از دنیا رفته بود و چون این دختر کسی رو به جز اون شکن نداشت پیش اون اومد و با خانواده شکن زندگی می کرد خانواده هیزمشکن که در قصر پادشاه کار می این دوشیزه زیبا رو بسیار عذیت می و اونو به کارهای سنگین وامی داشتن شاهزاده که سرگذشت این دختر رو می دونست، اول دلش براش سوخت و رفته رفته آشغ بیقرار دختر شد. اما دوشیزه زیبا که بیخبر بود احساس می کرد که هر وقت زیر این درخت ناروند راز می یک نوع حالت آرامش و صفای خاطر بهش دست می هیزم ها عادت داشتند هر سال تابستون چند درخت بزرگ را برای تهیه هیزم زمستان ببرند و امسال اونا تصمیم به بریدن این درخت نارون گرفته بودند دوشیزه زیبا وقتی که از تصمیم اونها باخبر شد فریاد زد اون درخت نارون و نباید قطع کنید هیزم شکن با خشونت گفت فردا صبون درخت بزرگ و قطع میکنیم و با شاخه هاش آتش شب نیمه تابستون درست میکنید. دختر احمق برای چی گریه میکنی؟ دوشیزه زیبا التماس کنان گفت خواهش میکنم اون درخت رو نبرید. هیزم شکن جواب داد حرف بیخود نزن این درخت رو تنبل کرده فردا هر ترتیبی که باشه قطعش میکنم. دوشیزه زیبا تمام شب رو بیدار موند و برای پیدا کردن راه حلی برای نجات درخت نارون به فکر فرو رفت چون دختر باهوشی بود فکری به خاطرش رسید صبح روزی که شب نیمه تابستون بود از جا بلند شد و از درخت بالا رفت و روی بلند ترین شاخه اون نشست از بالای درخت تمام جنگل و کوههای اطراف اون به خوبی دیده می شد آفتاب تازه بالا اومده بود که سر و هیزم شکن و کارگراش تو جنگل پیدا شد پیش خودتون مجسم کنید که شاهزاده از دیدن تبر و عره اونها چه حالتی پیدا کرده بود هیزم شکن به کارگراش گفت اول اولو من وارد می کنم. اون وقت تبر رو بلند کرد تا بر تنه درخت فرود بیاره که ناگهان صدای شیرین و گوش نواز از بالای درخت شنیده شد که این شعرها رو میخونه تبر را بیفکن تو ای تیر بخت منم یک بشر در لباس درخت هر کس که بر من زند زربعی همین لحظه بندد ز دنیای رخت کارگرها که بسیار ترسیده بودند فریاد زدند این درخت جن داره قبل از اینکه به ما صدمه بزنه بیاین فرار کنید و با وجود سرزنش و دشنامهای هیزم شکن اونها به سرعت باد پا به فرار گذاشتن هیزم شکن که مرد پردل و جرعتی بود بار دیگه تبرش رو بلند کرد تا بر تنه درخت فرود بیاره که مجدداً صدای دخترک بلند شد تبر را بیافکن تو ای تیربخش منم یک بشر در لباس درخت هر آن کس که بر من زند ضربی همین لحظه بندد ز دنیای رخت هیزم شکن از شنیدن این صدای عجیب قدری دچار وحشت شد ولی باز هم سرسختی کرد و تبر رو به هوا برد که دخترک برای سومین بار همون آواز و سر داد. در همون لحظه شاخه بزرگی از درخت جدا شد و روی شونه شکن افتاد. شکن که این بار بسیار ترسیده بود به سرعت فرار کرد و از نظر ناپدید شد. دوشیزه زیبا از ترس اون که مبادا هیزم شکن دوباره برگرده تمام روز رو روی درخت موند نزدیکی های غروب آفتاب از شدت خستگی خوابش برد و همونجا بالای درخت به خواب عمیقی فرو رفت نیمه های شب صدای وحشتناکی شنید صدا فریاد زد ای دختر پلید مکار زود از درخت پایین بیا و الا همین الان درخت و قط دختر که بسیار ترسیده بود از اون بالا نگاهی به پایین انداخت و هیزم شکن دید که زیر درخت ایستاده اون فانوسی تو دستش داشت و برنده ترین تبرش رو هم روی دوشش گذاشته بود وقتی که هیزم شکن به خونه برگشته بود و دختر رو در اونجا ندیده بود فکر کرد صدایی که باعث وحشتش شده باید صدای دخترک باشه هیزم شکن جنس از زیر درخت فریاد زد بیا پایین بهت نشون میدم که چطور باید حق بازی کرد یک دو سه اینو گفت و تبرش رو بلند کرد تا بر تنه درخت فرود بیاره که ناگهان سر و صدای درختانی که خودشونو آماده پذیرایی از پادشاه درختها ها میکردن تو جنگل پیچی هیزم شکن که این بار واقعا به وحشت افتاده بود تبرش رو پایین آورد ناگهان در میان تاریکی جنگل دو نفر رو دید که به طرفش میان قدمی برداشت تا فرار کنه اما یکی از اون دو نفر چوب سهرامیزی رو که در دستاش بلند کرد و هیزم شکن رو بر زمین میخکوب کرد. اون دو نفر پادشاه درخت ها و دوستش جادوگر بزرگ بودن. پادشاه درخت ها وقتی که زیر درخت رسید فریاد زد ای دختر زیبا بیا پایین و نترس تو بسیار دلیرانه رفتار کردی بدبختی تو به پایان رسیده و روز خوشی در انتظار توه دختر از درخت پایین اومد و جلوی پادشاه درخت ها ایستا اون در لباس روستاییش بسیار زیبا و جذاب به نظر می رسید. جادوگر بزرگ چوب سهرامیسش رو بلند کرد و تنه درخت رو با اون به آرامی نوازش داد. درخت به اون بزرگی ناگهان کوچک شد تا به صورت شاهزاده جوانی در اومد. جادوگر از دیدن شاهزاده گفت شاه ساده خوش اومدی جادوگری که تو رو به شکل درخت درآورد، آورد دیگه نمیتونه بهت کاری داشته باشه من اونو به صورت یک جغد درآوردم و اونو به ملکه سرزمین فانوس بخشیدم اما توی هیزم شکن همین الان تو رو به شکل یک بوزینه و میمون در میارم و وقتی به شکل انسانی در خواهی اومد که به اندازه درخت هایی که تا حالا بریدی درخت بکاری یک لحظه بعد یک بوزینه بزرگ روی درختها میپرید. می پرید از پادشاه درختها و جادوگر بزرگ تشکر کرد و با دختر زیبا به قصرش برگشت و در اونجا با او عروسی کرد و سالهای سال با هم به خوبی زندگی کردند درخت سهرامیز داستان‌های محلی اصفهان صفحه 17 گردآوری دکتر عباس فاروقی انتشارات فروغی چاپ اول 1337 شنوندگان عزیزم امیدوارم از شنیدن این داستان خوشتون اومده باشه و ازش لذت برده باشید و در داستان بعدی هم منو همراهی بکنید همه شما رو به خدای مهربان می سپرم. سفر به دنیای پر رمز و راز ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی